بسم الله الرحمن الرحیم الحمد رب والسلام محمد به دونو مخالفت تسنن یکی مخالفت اجتماعیه و دوم مخالفت عملیه اگر مخالفت عملیه باشه زمینا حرمت داره و احکام تنهایی که شرعیه نفسیه برش متلزم یعنی اگر از حیث مخالفت از محل بحث و به جهت مستقلیتش برای مخالفت امنیه یعنی اگر در مخالفت از بحث داره که آیا حرام یا حرام نیست به خاطر اینکه بحث در مستقلیتش نسبت به مخالفت امنیه از بعضی از جهات مخالفت انتظامیه مخالفت عملی تلقی شده و از جهات دیگه مخالفت انتظامیه مخالفت عملیه نمیدنند و مشهور بر قول دومند که مخالفت انتظامیه مخالفت عملیه حساب نمیشه خصوصا با توجه به این که محل نظاع توسلیات در توسل یا شاره این فیل رو در خارج خواسته به اینگه و چه اتفاق محقق بشه چه با قصد قربن چه با قصد انتصال و چه سایر قصد های خوب یا اقلایی یا شرعی و غیر اوغلایی و غیر شرعی مهم اتفاق این فیل در خارجه حالا میخواد با قصد باشه میخواد با قصد نباشه میخواد با التظام یا نباشه و این بنابر تفسیریه که ظاهر مشهور بش نسبت به التظام یا یعنی التظام قلبی به احکام آیا انسان موظف قلبا ملتظمه به احکام واجب و حرام و مستحب و مکروه و حرمت و سایر احکام وضعیه باشه یا نه این محل اختلاف حالا مخالفت التظامیه دو تا مثال براش زده مثال اول التزام به اباهی یک فعلی که مرتد بین حرمت و وجوبه اگر کسی رو از مصادیق بحثهای مجمالی حساب کنه کماینکه ظاهر مسلف همینه میشه در اطرافش بحث کرد. ولی اگر قاعد شدیم به اینکه که دولان هم بین المحضوره مثل حرمت و وجوب از ابحاث باب تخییر نه از این مثال مثالی برای مهم بحث ما نیست حالا با طبق نظریه مشهور و مصنف بحث میکنیم که این را از موارد انتیاد گرفته علم اجمالی محکومه به منجزیت در مشهور به منجزیت حقیه یعنی آخری سر از احتیاط باید در بیاره احتیاط, احتیاط, احتیاط در... تا نیست دیگه نداره این از ما افعاظ نمیدونم نمیدونم این شاید از حسی مخالفت اتضامیش داره بحث میکنه ولی نباید بیاری مثال اگر فعیلی دایل مدار بین حرمته بحرمته احتیاط درش ممکن نیست برای چی میارم بحث میکنن؟ لذا اشکال وارده اگر کسی نحیم مبتر بکنه که مشهور واردن بازه احتیاط تام نیست احتیاط تام میخواد مشهور قاعدن به احتیاط تام من. یعنی یا اجتناب از اطراف یا ارتکاب همه اطراف لذا مثال مثال واقعی نیست برای بحث ما در نامت مثال که انسان مبتزن به اباهه فیلی بشه که مردد بین حرمت و وجوب یعنی نه قائل به حرمتش باشیم نه قائل به وجوبش باشیم قائل به هم حتی تا نشیم قائل به اباهه بشیم و این ظاهرش اینه که بین اباهه و فرق فرده ایشون نگفته قائل به تخکیر بشیم مثل شیخ توسی قائل به اباهه شده اباه رو ظاهرا غیر از تخییر میدادن حالا فرق جوهری بین اباهه و تخییر هست یا نیست این در بحث خودش یعنی در آخر همین بحث مخالفت انتظامی که خیلی طولانی هم کرده خسته کننده میاد میرسیم که شیخ توسی قایل به تخییر بعدا اختلاف میشه یا تخییر ظاهری یا تخییر واقعی رو داره میگه ولی اینها قایلا به اباهه اباهه پس ظاهرش که غیر از تخییره و اگر تخیر بود انان میگفت که به تخیر بین حرمت و وجوب که ظاهر شیخ توسی هم همینه بلکه تسریحش همینه حالا اگر کسی در موالک فعلی مردد بین وجوب و حرمت باشه به بواهه شد دوران امر بین محذورین اینها قابل جمع نیست یک فعلی که مردد بین حرام و واجب باشه اگر انجام بدیم طرف وجوب رو گرفتیم اگه ترفا کنید طرف حرمت رو گرفتیم بنابراین قول به اباهه در این موارد به چه معنی است اینها قائد هم در این که خالفت لازم میاد ولی مخالفت عمدیه لازم نمیاد چرا؟ چون شخص یا قائد یا تارک سکار به دین هم ندارد. شخص در این موارد یا قائد یا, یا تارک لذا علاکه در تبدیره مخالفت مدیگه اتفاقه نمی افته ولی مخالفت لازم میاد این شخص اگه بایده به بایده باید بشه هم وجوب رو و هم حرمت رو نفیش کرده آیا میشه ما نفی کنیم وجوب رو حرمت رو احداث قول سالسی بکنیم یا نمیشه یا خرق اجماع مرکب درست یا درست نیست خب یک دیدگاه های جمودی بود قبلا برای اینکه میگفتن نمیشه کسی قائل بشه به اگاهه قائل به تخیر احداث قول صالح نمیدم دونم خرق اجماع مرکبم سال اینها که شاید فقه ما رو 500 سال عقب نگه داشت قائل بودن ولی الان این اقوال مرفوزه بعد از بروز مکتب آخند خراسانی و تلامزه ایشون دیگه همش کنار رفت چیزی از اینها نموندند من ولی حالا هرچی بود کار خودش خودشو کرده از صده چهار و پنج شروع میشه تا زمان آخند خراسانی این انجماد بود قائل بودم اینکه ما نمیتونیم رفتش کنیم رفتش کنیم من کنیم ما یا باید قائل به این قول باشیم یا قائل به ما قول باشیم چون امام در زنده یکی از این دو قوله حالا به کدوم دلیل دلیلم ندارم بی دلیل ولی الان دیگه از محضورات این اقوال خارجن هرنام قائل این حرفا نیستن این بحث که مصنف دارم مطرح می‌کنه، کنه به صورت سوری اگه باشه واقعا وقت حالت کردن با در مخالفت التزامیه نسبت به دفن میت مسلم میگه بحث کن. شخصی قائل به وجوب خیلی تکالیف توسلیه نباشه ولی انجام بده بگیم پرستار راننده شاطره چی خیلی از کار هایی توسلی اینها رو انجام میده خارجم ولی اعتبال به وجود اینها نداره میان بحث کنیم که اینهای مرتکب مرتقی حرام شد یا نشد خود اینها میگن توسلی دیگه و توسلیه حرمتی نمیمونه از برای چی دارم بحث میگونم لذا اصل بحث و شاکله بحث بیمتوار اطلاق عمره در واجبات توسلیه که به یکی از اون پنج معنا شما بگیرید یعنی لازم نیست شما حتما برا خدا انجام بدی مهم که این کار محقق باشه در خارج شخصی باشه نانوایی بکنه شخصی باشه رابندگی بکنه شخصی باشه خیلی این تکالیف توسلیه در نمیت و امسال اینا این انجام بدن شعاره میخواد اینا محقق باشه در خارج به ایه وجه جهن به هر وجهی میخواد باشه مهم تحقق این فعل در خوری میخواد با قصد قربت باشه میخواد نباشه مثل نظر شیخ از انصاری نسبت به درس کنن طلب ها و مباحثه به هر نیتی شده گفت باید درس بکنن و مباحثه بکنن دنبال دست قربت نگردیم و الا یعظم که تلبیسات شیطانی رخ کنه و انسان مباحثه رو بذاره کنار بگه آقا این هم بحث من خیلی تقویان نداره این دست تقوی درش نیست اون درس چیه که از این حرفا درس خوندن و خیلی از اینها وقتی قصد قربت قصد امتصال هم خیلی از این عناوین درش داخل نیست برای چه بحث کنیم مقارمت اتظامیه حرام هست یا حرام نیست پس صورت بحث صورت بحث بی محتوام و بی اساسه کنابرای مبانی خود اعلام درست نیست چون محل نزاد در توسلیات لذا برای اینکه بعضی از مباحث عمده فقهی در اینجا مطرح بشه دیروز دوتا مطلب رو نسبت به حرف مطرح کرد. حالا آقای مشاهده مراضی کردن اینها رو دیدن که در رابطه با این مثاله که میزنه که یک فعلی به خاطر قسم حرام بشه یا واجب بشه یه موقع هم مردد بین وجوب و حرمت ذاتن حسن نماز یا واجبه یا حرام ولی بعضی از موارد وجوب و حرمت عرضیه به عنوان نظر واجب میشه یا عهد یا قسم اینو داریم بحث میکنیم که در این موارد آیا عنوانی عوض میشه یا ذات عوض میشه اختلف الاحلام علا قبله مشهور قایلن به اینکه ذات عوض میشه و یقینام انشاءالله پیدا کردید واردش شو، وگه وقت پیدا نکردید تعطیلات در پیش پیدا کنید و مخالف عمده در مسئله امام در تحریر وسیله که قاعدم این که عنوانی آرز میشه بدون تغییر ذات ذات عوض نمیشه حالا تا این مقدارش معلوم شد دیروز در ادامه یه بحثی باز مرتبطه به همین میشه از حیث سمراتش و اون اینکه عناوی ثانویه نسبت به اینها که رتبه داره که ارتباطی داره اگر کسی نظر کرد و مبتلای به مشقت و اسرارج و امثال اینها شد در این موارد چیکار کنه یعنی اون رو این الزامیات ارزییه چیه چی میتونی این رو کنه بعضی از موارد میگن که شخصی نزد کرده میگن خب پدرش میتونه این رو برداره خودش این کرده دو ما روزه بگیر پدر این رو نفذش کنه شنیدید در این موارد رافع این الزامیات عرضیه ثانویه چیه چی میتونه رافع باشه نظر ما رو بشکنه عهد ما رو بشکنه قسم ما رو بشکنه بدون اینکه که با خودمون هنس کرده باشیم و گناهی انجام داده باشیم رافعش چیه؟ بنابر نظر مشهور که ذاتی میدونم تغییر رو در متعلقات اینها یقینا باید اناوین سانویگی آرز بشه اناوین سانویگی آرز بشه مثل استرار مثل ذره مثل اصلاحراز و همسالین ها و وقتی اونها آرز میشه به مقدار همون مقداری که آرز شده مرتفع میشه اون مشهور مگه ذاتی ذاتی اون ما میگفتیم مشهور نمیدونم مشهور اناوید سانویه رو همه رو بر احکام اولیه حاکم میدونن و هیچ فرح به این و رو اصلاحراز هم نمیدونم قاعدم به همه یکاس هم مبنای مشهور می مبانع داریم محصو میکنه. بنابرا مبنی مشغول رافش اناوین سانوی. اناوین آیا اصلش رو برمیداره یا به مقدار همین عنوان برمیداره خب یقینا به مقدار همین اناوین برمیداره. از ضرورات توبی هو محضورات محظورات اولیه میخواد باشه؟ یا محضورات سانویی که با نظر و عهد و قسم درستش کردیم بعد قاعده دوم اینی که از ضروریات تطقدر به بقدره ها شما دو ماه سر هم روزه نز کرده بودی خب نمیتونی همه رو بگیر یه روز در میان بگیر نمیتونی دو روز در میان بگیر سه روز در میان بگیر همه رو بر نمیداره همه مرتفع میشه به مقدار خودش یا به مقدار اصطحرش برداشتی میشه اون مقداری اصطحرش داره برداشتی میشه بقیهش باست ثابت میشه بنابرای این که قاعده به مکتب ذاتی مشهور باشیم و مبنای دومشون در همه فقه که اناوین اصانویی که آرز میشه حکم رو به مقدار همین اناوین برمیداره نه این از اساس برداره مش موقع استوهرز اصل و حکم رو نمیداره به مقدار رفع استوهرز مرتفع میشه. به مقدار رفع استرار برداشته میشه. به مقدار خودشون بیشتر از اون برداشته نمیشه. این بنابر این مبنا، مبنای مشهور. ولی اگر مبنای دوم رو بگیریم که قائل بشین به اینکه این عناوین ثانویه تغییری در ذات نمیدن یا عنوان دوم میاد که وجوب وفا باشه اگر شخصی بخواد این وجوب وفا رو برداره چطور باید برداره؟ و چه راهی برای رفت وجوب وفا داریم؟ نظر کرده؟ یا اح یا قسم؟ رافش چیه؟ جزء انوانیات دیگه، جزء انوانیات انوانیات گفتیم عناوین ثانویه مطلقا در شاکمه منتها فرقش که از اساس برمیداره یعنی اگر کسی نظر بکنه دو ماه پشت سر هر روزه بگیره وقتی نتونه کل نظر نمونده. نه که روزی که نمیتونه نگیره روزی که میتونه باید بگیره از اساس برمیداره فرق ماهوی بین این نظریه دوم با نظریه مشهور دلیلی دلیل در باب نظرین آمده و در قاعده لازره هم خیلی بحث کردن خصوصا موازی عراقی و در قاعده استوحرج اومده بحث شده که ما اینها رو چطوری بگیریم اینها رو قواهد امتنانی بگیریم یا قواهد غیر امتنانی بگیریم مرتبط به اون بحث میشه ولی من نتیجه نظریات گفتم نتیجهش اینه که اگر کسی قاعده به نظریه اول باشه خب به مقدار خودش ولیگر کسی خواهده به نظریه دوم انوانی باشه از اساس برداشته میشه به محض اروز اناوین سانویه حالا اناوین سانویه در اون اولی یعنی فرق دوم محدود به همون که شنیدید لازرر باشه استرار باشه استوحرج باشه و امسانیم ولی اناوین سانبیه در دومی منحصر به اون موارد نیست یعنی به نحی والدین مرتفع میشه همین که مادر بگی من راضی نیستم رموزه بگی نزد شما منحل میشه از بین پدر بگه من راضی نیستم از بین هر حتی انسان احراس کنه اونها راضی نیستم منحل میشه از بین میه ولی دفتر مبنای اول از بین نمیده لذا اونهایی که قائلن به این که در مواردی که نظر و عهد و قسم ما راهی برا خروج ازش نداریم و عناوین نسانوی یارز نشده میگن والدین بیا نحیش کنن اون بنابر مبنای مشهور درست نیست مناور مبنای انوانی و دوم درسته امر والدین ذات اون عوض نمیکنه ولی انوان مجوب وفا رو بر در تعارض و تقابل بین امر والدین و نهی والدین با وجوب وفا یقینا اون مقدم بر وجوب وفا است مطلقا در همه اقواب فقی یه چیز تذکیش شده در بعضی از قواهد فقهی ها مثل تحییر و, هم و هم. حتی احراز عدم رضایت باشه عنوان سانویه که در مورد دومی نیاز به امر و هم نیست عدم رضایتشون یا احراز عدم رضایتشون کافی برای نهدارش این اینها رو اینشان خودتون پیگیری کنید دیگه در زیل قواعد لازرر و استوهره میاد اینها بحث میشه بعضی از مساقاة عراقی خوب بحث کردن بعضی هم ولادی اشاراتی بهش دادن امیدی که شما ممانید رو باید تشخیص بدید وقتی عهد و نذر و قسم آرز بر یک فعلی میشه این رو تغییر میده یا یک عنوان وجوب و وفا براش میاد و ماهیت اون فعل بر ماهیت قبلی خودش باقیه چیزی عوض نشده حالا وجوب و وفا رو ما با چی میخوایم ورداریم اون که میخواد ورداره منحصل به اون اعداد خاصی که قواعد خاصی که مشهور میگن نیست بلکه توسعه داره این یک مطلب مطلب دوم اگر این مثال اول رو بخونم که الالتزام به اباحه خیلی مرد ددن بین الهرمت بالحرف و بین الهجوب بالحرف ما اتحاد زمان یک الهجوب و الهرمت دو تکلیف متضاد در یک زمان دفتیم ثابت نمیشه اهدام زده اینا و تضاد دارن تضادیشم اشارا در حلباز آقای مراجع کردن دیدن که اینها اعتبار اشاره دو حکم متضاد رو در یک زمان جمع نمیشن این یک مثالی که آیا شبهه حکمیه احصاب میشه یا موضوعیه یه نکته کلی در تفسیر شبهات ما اولا تا شبهه داریم نه دوتا تا در خیلی از کلمات شبهه حکمیه و موضوعیه مطرحه و بعضی ها دقیقه آوردن بحث کردن شبهه مفهومیه و مصداقیه رو اضافه میکنن. و اونهایی که این دو شبهه رو اضافه میکنن بر دو دسته. بعضی ها میگن این دوتا مستقلن بعضی میگن میگن نه مستقل نیستن برگشتشون با همون دوتای قبلی یعنی شبهه مفهومیه رو میارن اضافه میکنن به حکومیه و شبههی مصداقیه رو اضافه میکنم به موضوعیه نه یه چیز می کنن. و حقیقت اینه که اینا ها چهار تا شبه هست و استقلالم هم دارن شبههی مصداقیه از شبههی موضوعیه هست شبههی مفهومیه قیل از شبههی حکمیه است. حالا یک تفسیری برای شبه ها شبهی حکمیه تفسیر و تعریف شده در اصول فکر ناخن بید به این که منشأ شبهات حجمیه یکی از این سه چیزه یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسته اینه. این سه مورد رو میگنم این شبهات حکمیه. اشتباه مور خارجیه رو منشأ شبهات موضوعیه میگونن شبه موضوعیه چیزی که منشهش امور مور خارجیه و اشتباه در امور خارجیه باشه دو تا لیوان با هم مخلوط شده من نمیدونم دو تا لباس یکی نجس بوده با هم مخلوط شده من نمیدونم اینطوری طوری میشه و گفتیم تفصیل دقیق نیست بعضی از موارد شبهاتی هست به ظاهر موضوعیه ولی در واقع حکمیه است. در میراث غرقا و محدوم علیهم و امثال اینها ما کدوم پدر زودتر مرده یا پسر زودتر مرده اشتباه در امور خارجیه است شاره که نکشت رو ما نمیدونیم کدومش زودتر مرده ظاهر شبهه موضوعی است ولی در واقع شبه حکمیه است شاره باید بگي کدومشون اول عرس میبرند بعضی از مواردم به ظاهر شبهه حکمیه است ولی در واقع شبهه موضوعی است مثل کسیری از موارد اجمال نسل و تزه ن این تفسیری که مشهور دارند یک تفسیر سووری چیزی به درد نخور و شاید خیلی از عدم موفقیت های استنباطی برگشتش به همین تفسیر باشه که ما شعبه حکمیه رو اینطور تفسیر کردیم و شعبه موضوعیه رو اونطوری تفسیر کردیم یک تفسیر دوم مختصری برایش سکر کردیم سابقا و اون اینکه شعبه حکمیه به شغهی گفته میشه که منوط به بیان شاره هر کجا شاره باید حرف بزنه و ما از خودمون نمیتونیم استضحال کنیم استنباد کنیم میگن شبهه حکمیه شبهه حکمیه به شبهه میگن که شاره باید بگیه میراس رو شاره باید بگه. عقل ما به چیزی نمیرسی ما نمیتونیم بگیم از عدمینه از ادمونه اینها چیه میراس محدومون علیه همینطور در تصادفات خانوادگی یه دفعه خود میکنن اما یه چیز مقتلاقه ایه کسی اتفاق میفته حالا قبلا قبلن می گردم با پدر پسر می رن تو قرق بشن یه اتفاق می رنن تصابقی که از این چیزها راست نه دیگه اینا شماهات و حکمیه شاره باید بگی چیزها کار بکنه موضوعیت, موضوعیت نداره نه هر چیزی که الان همون شبه یک نیه از داره ویان میکنه اشکارشون محلومون علیه اونها که در زلزله های اینا میمیرن مثل بعد خب اینا عرص اول مالکی بوده بعد مالکی میشه از کی به کی میرسه اینا اختلافیه موارد معلوم انتقال ارث الان اختلافیه یعنی میبینی پدری مرده اموال به بسی ها شده 20 سال تو دادگستری اولاد صالح تربیت کردن افتخارشون هم این بوده که مسجد ساختن و مولاستان ساختن و بلیه بزشه ها ناسالح برای پول میرن دادگاه میان خوهرها رو میکشن به دادگاه خودشون میرن میان آخرش هم میکشن بالا و به الان عراق با این همه دب دب و وکرکبه به زن و عشق نمیدن عادت جاهلیت هنوز در بینشون هست چرا باید اینطور باشه؟ به محض اینکه که میمیره قبل از اینکه مراسم لگیرن باید درست تقسیم کنه. چرا این طوری نیست؟ قرنوم اثر نداره بگه اثر نداره تبدیقها و منبرها حرف حرفها هیچ کنم اثر نداره چطور جرأت میکنن بخوابن تا فردا میان تقسیم میکنن این دینه یعنی حتی فردا قصدشون این باشه فردا میخوام بیان تقسیم کن اینا بهتر از مراسم گرفتن و نمیدونم در تهران گلهای یک میلیونی دو میلیونی تفاخرن میخرن میارن پیم چقدر گل پریشان میکنن انسانهای جاهل و بیعقد اینطوری اشت تقسیم میکنن نه اتضام به احسان میشه هر کسی برای یه مرده چهار شاخه گل میارن اینجا گل میخواد چه اینها رو بدیم به اونهایی که ندارن این همه مستضعف داریم چرا اینجا تبلیر نمیشه گل چه معنایی داره مرده که مرده شخصی مرد باید اعظام بگیریم که چرا مرد مرد که محراحه قصه داره <تصفح> <تصفح> یا بیایی گل بخری درست میشه دین ما اینطور نیست خدا میدونه دین ما یک دین هنیفه دین ما خیلی لطیف و زیباتر از این چیز ظاهرشو بعد جرس کردن و چقدر بعد خلاف دین سیر میشه حالا اینها در این موارد که اتفاق میفته در تصادفات اینها اینا شبهه حکمیه میگن شاره باید بگه ما نمیتونیم اصل عدم جاری کنیم این اول نمرد اون اول نمرد ماشین اول مرد نمیتونی حرفا رو بزن بله گرعه موقع ما دلیلی نیست که بیاریم ما بحث کنیم القرعه تو امر مشکل آره ولی آیا حکم فقیه یا قضاییه قرعه یک راحل قضاییه اون حسن هم در موارد خودشه فقهی نیست ما بیان برای حسابهای پسنداز قرعه بندخ نه فقهی نیست کسی مالک این پولا نمیشه به قرعه بگیم که ده, ده میلیون برای من در اومد به چقدر آخانده گرفتارن پولو میذارن سود بگیرن شبههناک میشه انسان شبهناک بخوره با ابن مدجمی شرقی نداره برای چی بذاریم مگه هر پولی آدم میتونه بخوره قرعه برای این چیزا نیست ولی حالا به این چیزا نداریم ما که حریف این چیزا نیستیم رئیس قوه قضایی اون روزا نوشته بودن که میگه دو سال بانک ها مفسدان اقتصادی رو به ما معرفی نمی کنن. حالا ما میخوایم اینجا حرف بزنیم دو سال رئیس قوه میگه نمیدن اسمها ما حالا بیان ما چرا قرضه کشی میکنن تو بانک چرا اینطوری امضا میگیرن چرا برای یک وام 6 تا زامن میخوام رئیس بانک مرکزی میگه برای کمتر از ده میلیون یک زامن شما یه پیدا کردید یک ضامن رو قبول کنن عین یه ضامی هم نمیگاهون اسرائیل پیدا بگیرید ماذلف رو زیاد میکنه اینها خوب نیست به خاطر اینکه فکر های مقدار پایینه دیگه الان کل تقدیل شبهه هر چیزی که شاره باید بگه الان ببین بعضی چیزها رو شعره باید بگه ما در نماز جورابو رو در بیاریم یا با جوراب نماز بخونیم اقل ما به چیزی میرسه خب شاره باید بگیم کمربند ببندیم کمربند سفید یا نبندیم هزام که مستحبه شاره باید بگه دکمه ها رو باز کنیم یا باز نکنه. شاره باید بگیم. لباس هایی که می پوشیم داشته باشه یا نداشته باشه. اونم باید شاره بگه. لذا بعضی از اعاظم دیده بودم که لباس هاشون دکمه نداشت. گره داشت. اخیراً باب شده زیاد لباس‌های گره دار. نق شاره باید بگه. چیزی که شاره باید بگه، شبهه چون حکمیه. ولی چیزی که ارتباطی به شاره نداره هر چیزی از شباهات که مرتبط به شعاره نباشه، شباهی موضوعی میگن مسادیرش هم مشخص میشه که بعضی از موارد باید عرف تشخیص بده بعضی از موارد نباید عرف تشخیص بده قیمار رو ما نمیتونیم بگیم شعاره باید بگه، عرف باید بگه نه این شعاره گفته و خودش هم باید بگه. شک که در شباهات این طوری اکمیه میشه ما نمیتونم به عرف مراجعه کنیم در شطرنز به عرف نمیتونم مراجعه کنیم در وبا به عرف به اقتصاد نمیتونم مراجعه کنیم در شعاره باید بگه و گفته نه شبهات حقیمی هست میمونه شبهه مستاقیه و مفهومیه. شبهات مفهومیه. الان <تصفيق> بگیم ما بگه از بیرون بگم شبهات مفهومیه. یعنی به بخاطر مفهوم مفهوم چهار دسته. بعضی از موارد اون مشروع ما مفهوم لغمیه بعضی از موارد مفهوم شرعی بعضی از موارد مفهوم عرفیه بعضی از موارد مفهوم عقلی بعد اون مفهوم عرفی خودش تقسیم میشه به دو قسم بعضی از موارد مفهوم مصور عرفیه بعضی از موارد مفهوم ارتقازی اند در عرفه حالا در این پنج قسم از شبهات مفهومیه ما چی بگیم اینطوری خب بحث نشده این رو در باب حقیقت شرعی باید بحث کنم یعنی وقتی بحث از حقیقت شرعی میشه در حقیقت شرعی بحث از مفهوم. آیا این وطن حقیقت شرعی داره یا نداره یعنی مفهومش باید از لغت گرفته بشه از عرف گرفته بشه از شر گرفته بشه یا از عقل گرفته باشه از کجا میگی؟ گفتن مسافرت اگه چهار فرسخ باشه موجب قصفه حالا اومد یه نفر از خونه خودش چهار فرسخ به طرف آسمون رن تو زمین نرفت، این وری رفت یه هواپیمایی داشت و رفت بالا نشسته چهار فرسخ این نماز قصر بخونه یا نخونه. جنب. بله؟ <تصفيق> این طوری از کجا بگیره؟ یقینا مفهوم رو اگه بخوای از عقل بگیری این سیل سیل لالله پسی اگه از عرفی بخواییم بگیریم این نامعبوله میگن اونجا رفته چیاره این نامعبوله مسافرت نمیگن بشه نامعبوله از نظر عرفی این سیل نیست از نظر شعری هم که چیزی وارد نشده بعضی‌ها شاید خیلی خندهشون بگیره بعض شاید خندهشون بگیره این چه مسافرت چرا اتفاق می‌افته امامی هواپیما قدرت بعد رفتن نداره هلیکوپتر میتونه بالا وایسته تا که امداد و نجات بیاد نماز این مسافرت هست این اینوری بنا بود این وری رفت اتفاق میافته بعضی از مواد انسان گرفتار میشه در بالا خب اینا چی کارش کنن اگه عرفی باشه این مسافرت نیست اگه شرعی باشه بیان نداره اگه عقلی باشه مسافرته خب ما این مفهوم سیر از کجا بگیریم از کدوم شاید بگیریم شما به عنوان فقی این مفاهیم از کجا میگیرید قصد مسافت مسافت شرعیه یعنی واقعا باید شر بگیم مسافت چطور باشه حتی خود مسافت رو یا نه شرعیه بودنش و محدودش رو چهاره داره میگیر این سهی رو باید از کی بگیریم این شما مفهومی هست شباهات مفهومیه خیلی اهمیت داره در فقر ها هیچ بحث نمیشه ازش. یعنی شما شباهات حکمیه و موضوعیه رو بحث میکنید، ولی شباه مفهومیه رو بحث نمیکنند. الا در یک مورد که میگردن شباه مفهومیه رو بحث میکنن و آن که میگن شباه مفهومیه مجرای استصحاب نیست همین در همین هم در مثال معروفی هم که داره شک دارم که آیا بعد از استطار قرص شانس و قبل از ذهاب همره مشرقیه مغرب شرعی شده یا نشده بعد از استطار قرص و قبل از ذهاب همره مشتقیه که 20 دیگه نوعاً فاصله داره خب اینو ما به مغرب بشیم یا نشیم شما اگه فقیه هاشید انشاءالله که هستید شما قایده به استطار قرصید یا زها به همه بشتقیه خب بعضی بودن قبلا میمدن استصاب میکردن میگفتن بعد از استطار قرص از عدم قروب شمس و میگفتن سب کنید و اینها رو صاحب جواهر و من تأخر مجمی اینها رو گرفتن که نشدنید گفتن نمیشه استصاب جاری نمیشه چرا؟ به خاطی استصاب بین اقل برکسره اگر یعنی ما اصلا شک نداری الان که شما امقای استصاب جاری بکنی استصاب در اقل برکسر راه نداره؟ چرا؟ چون اگر غروب شرقی استطار قرص بوده یقینا شده اگر ذهاب عمره مشتقی هست یقینا نشده چه استصحاب استصاب بکنه. بکنیم؟ بعد از صاحب جواهیم قاعد شدن به عدم جرایان استصحاب در جمیع شبهات مفهومیه همین در همین حد با اینکه یکی از پایه های اساسی فقه ما شبه مفهومیه مفهوم قروبه در روایات نمیدونه مغرب و مفهومش مفهومیش نمیدونه میگه آیا استطار برسه یا زهاب همه مشتقیه خب اون زمانی که در شرح دوم اداشتی میخوندیم اونا ها به هم رای مشتقیه گرفتن در مسائل و در مدارک شبهاتش رو مطرح کرد انشاءالله مراجعه کنید برای مباحثاتون اگر کسی همین بحث رو بره تحقیق کنه بیاد مباحث کنه با هم بحثه یک سال جلو میفته. دیگه تو ذهن ها میمونه که مشهور مبناشون بر اینه که در شبهات مفهومیه استصاب جاری نکنن عبدان. استصاب اصلا جاری نمیشه اگر شبه مفهومیه باشه لذا من مفهوم مسافت رو نمیدونم میتونم استصاب کنم عدم سبوت قصر رو نه نمیتونم. لذا شبه مفهومیه که یکی از ارکان مباحث فرقیه در اصول مطرح نشده ادعا در خصوص همین مسئله یعنی مسئله عدم جریان استصاب در جمیع شبهات مفهومیه همین هم آزم خیلی خوبه یعنی سریحن انسان به از آن برسه که مبانی مشهور برای اینه که در شبهات مفهومیه استصاب جاری نمیکنه. کنه اگر در فروعاتی شما دیدید که کسی میبینید که با اینکه که شبه مفهومیه بوده اومدن سر استصاب دارن دعوا میکنن هر کسی استثام خودشو برداشته آورده میخواد جاری کنه اینا برخلاف برداشته اینطوری نیست شبهه اگه مفهومی باشه از محت جریان استثام خارج بشه. چکارش کنیم اینها رو؟ از شبهه مفهومی پنج قسمه بعضی از موارد مفهوم احتکازی در نظره نه مفهوم عرفی سریع اینا رو از کجا پیدا کنیم یعنی تمام منفقه هایی که میگن قوت قوتشون بخاطر همین چیز هست اگر ناینی قویه بخاطر همینه و اینا خوب هم بحث آغازی ها بوده در درس آخونده خراسان خیلی چیزا رو اون میدونه آغازی ها اعمال نمیکنه. چرا چون انتقالش مقدار مثل ناینی نیست انتقالش به چیزای دیگه است. به طرف عقلیات و منطقیات میکشه اگر شما اینها رو تشخیص بدید این بحث ها فایده ای داره و فایده ای نداره. این شبهه مفهومیه مشهور حالا چرا اینو بحث نکردن؟ چرا بحث نمی کنم؟ به خاطر مفهومیه راجع به شبهه حکومیه است به این چقدر خلطه؟ مثل که شما در شیمی خونده بودید که آب از چی تشکیل شده بعدا بیاید بگید نه اینا نیست یه چیز دیگه است عناصر که هیچ دخیل نیست انا دخیل می کنن و دخیل میدونن در مقام اعمال این قواعد این اینطور باشه شبهه مفهومیه رو ما برگردانیم به شبهه حکمیه دیگه از همه چیز به هم می ریزه دیگه چیزی نمیمونه چیزی که من در مفهومش مشکل داشتم میگن شبهه حکمیه شبهه حکمیه م حکمش واضح براعت جاری میشه براءت شد فق یعن کسي براءت کنه درست شد دیگه. پس مشکلات ما الان اساسیه شبهه مفهومیه رو با تمام بند و و با تمام اهمیتش آوردن برگردوندن به شبهه حکمیه خب اینو طلبه نمیتونه منتقل بشه شبهه مفهومیه راه های خودش رو داشت شبهه مفهومیه همیشه سر از واسطه های اروزیه در میاره چه رفتی به شبهه حکمیه داره آخره؟ در تمام موارد شبهات حکمیه در تمام موارد شبهات حکمیه که سر از واسطه های اروزیه در میاره احکام ما متغیر میشه ما به حکم ثابتی نمیرسیم این چه رفتی به شبهه حکمیه داره که یا متقیر یا ثابت در شباهات مفهومیه در شباهات مفهومیه همش برگشتش به واسطه های در اشتباه هم. وقتی ببین اور و ارتکاز و امثال اینها دخیل باشن در تکوین موضوعات و مفاهیم واسطه‌ای روزیه میشه اور ارتکاز و نظر شخص همه اینها واسطه‌ن دیگه در یه وقت شامل تحلیل کرده اما همون قید و که آورده و اون مفهومش در مواردی تحقیق موضوع کرده اون از مواردش رو موضوعی و مفهمی نداره مفهوم معلوم شما خودتون فرض کنید موضوع کرده. وقتی چیزی که موضوع کرده باشه، شبهه مفومیه نداره جزمن. اون مورد شبهات مصداقیه میشه. با این موضوع اگه محدد کرده باشه، یقینا شبه مفهومیه نداره دیگه. اون قسمتی که تهدید کرده، شبهه مفهومیه نداره. والا من چیه خب از عرف بگیر از ارتکاز بگیر از چیز دیگه از عقل بگیر ولی خب اون شوبه و مطهونیاتی که مثلا همین من در شبه مفيد مفهومیت اینجا ولی اما ذاتیه ذاتی؟ نسبت به خود مسافت هم نسبت به, به تشویش مسافت در خارج هم ذاتیه نه این نه نسبت به موادی تحدیده حالا این مثال ها تطبیری میخونه این ها رو که گفتم برای که تطبیری بخونه مثالم زدم به سیل به سما اینا که معلوم باشه حالا هم می هم میخونم اینشان ها حالا هفته ایوت هست یا نیست هست خب شمبه و یک شنبه این میخونه این تطبیقات شنبه و یک شنبه. این شبه مفهومیه وقتی که داریم میگیم در همین معجم اصولی آقایین شبهات رو بید بگردید پیدا شده. و تسلطی که ها به جستجو بیشتر از ماها از جاهای دیگه هم بیارید. استثنا در شبهات مفاهیمی جاری نمیشه. بزنید در تمام فروع فقهی بیاد براتون. هزار تا فریضه فقی براتون بیاد. کینه استثنا رو در این موارد جاری نکردن. و اینا خیلی مهمه. شما برناست استثاب رو محدودش کنی در این موارد بگید جاری نمیشه شما اینکه بعدا میخوام بگید جاری نمیشه پس جایگزینش در این پروهات چی میشه این پیدا کنه یه مونه شبهه مستاقیه شبهه مستاقیه در مقابل شبهه موضوعیه است شبهه موضوعیه مال مواردیه که واسطه نداره این واسطه اوزیه نداره شبهه مستاقیه نوع مواردی که واسطه اروزیه داره یعنی اینکه ما مستاقیه موضوع چیز دیگه است شبهه مستاقیه در احکامیه که واسطه اروزیه داره ولی شبهه موضوعیه در مواردی که واسطه اروزیه نداره واسطه سبوتیه بوده این یک تفکیه که پل جمله تشریحش و تفصیل شنبه شنبه مستاقیه الخمرو حرام خمر مستاق یا موضوعه مستاقه مستاق مسکله چون اون چیزی که حرامه واقعا مسکله الخمرو حرامون لعن نهو مسکله لعن نهو مسکله چیه حالا طبق نظریات مشهور و تطبیقه بر این مثال واسطه یه داره خم میشه مستاق خمر مستاقه ولی موضوع کل و مسکره هرام حالا چرا خمر اومده گفته به خاطر اینکه خمر چه مسکر باشه چه نباشه مطلبه هرام ولی غیر خمر مثل نوشاب و ها اگر مسکر باشه ولی بلی خمر خصوصیتی داره خصوصیت چیه؟ یعنی که ولو فاقد ازکار باشه باز هرام یعنی نگم مستاق تفصیل شمده شمد را شمد شمد. جلسه امشب احتمالا من من باید برم تهران امشب نمیشه فردا باشه یا نباشه جلسه ها من یه توصیه خیلی دوستانه باقاییم بکنم جلسات زیاد به درد نمیخورم همیشه اگه میخوایی پیش درفت بکنی جلسه ها اگه بنا شما پشت درونی به جای دو تا درس یک درس بخونید. و زیاد شدن فایده نداره و فرصت های خودتون رو هی زیادش کنید. تعطیلات زیاد میشه اینا همین که روان شما آروم میگیره که فردا درس نیست، پس فردا نیست، بعدش هم نیست ان این, این خودش باعث میشه اونا که امروز شنیدید تو ذهنتون بمونه. ذهنها رو مشغول نکنید. حالا فردا نباشه برای دو شب جلسه برای ادراک و تدارک موفات از اون دو جلسه چیز ولی الان اعتقادی به زیاد شدن جلسات ندارم از اول هم اینطور بودم الان هم اینطور هم با اینکه مگر بدایی مستید ساعت بعد میگن اینجا کلاس ندارم نیشنبه و دوشنبه نیشنبه شنبه بله رفتم بسید که از بادم. پس اینجا کنیم بشینم دیگه فقط یه نفر پایین باشه من دارم دارم این تو اون که بین یه رو Hello, hey,